سه ششم خواندن راه آهن راه آهن همترین وسیله نقلیه برای مسافرت های طولانی است به ویژه برای حمل و نقل کالا راه آهن از مدتا پیش استفاده می شد از این رو در بررسی پیشرفت یک کشور طول راه و راه آهن آن یکی از میارهای اصلی به شمار می آید. البته ناگفته نماند که در دنیای امروز با توسعه صنایع هوایی کاربرد راه تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده است و این پدیده به خصوص در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا بیشتر دیده می‌شود. با افزایش جمعیت شهرها و نیز با مهاجرت روستاییان به شهرها و نقلیه روی زمینی مثل اتوبوس پاسخگوی حمل و نقل شهری نبود. به همین دلیل متخصصان حمل و نقل به فکر استفاده از زیر زمین افتادند و به تدریج استفاده از مترو متداول شد. مترو نسبتا گران بود و ساخت آن نیز مشکلات فراوانی از قبیل برخورد با فاضلاب و تخریب ها به همراه داشت با وجود این از این وسیله نقلیه امروزه بسیار استفاده می‌شود فارسی آمیانه کتابی احمد محمود زمین سوخته احمد محمود تولد 1930 وفات 2002 نویسنده برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران در استان خوزستان به دنیا آمد و در همون جا بزرگ شد. وی که در جوانی به کارگری و رانندگی کامیون مشغول بود، به خاطر نظرات سیاسی چپگرایانه خود و فعالیت در های مخالف دولت به زندان افتاد. محمود درباره جنگ ایران و عراق و پیامدهای آن در استان خوزستان به تفصیل نوشته است. روزهای آخر تابستان است. خواب بعد از ظهر سنگینم کرده است شرجی هنوز مثل بختک رو شهر افتاده است و نفس را سنگین می کند کل رو خاموش می کنم و از اتاق می بیرون آفتاب از دیوار کشیده است بالا سابر کنار حوز رو جدول هاشیه باغچه نشسته است و چای میخورد. خورد میناش لنگ را گرفته است و دارد اطلسی ها را آب میدهد. بوی خوش گلهای اطلسی تمام حیات را پر کرده است چونپاتمه میزنم لبه حوز و دو کف آب میزنم به صورتم صدای مادر را میشنوم تو ایوان نشسته است پای سماور چای میخوری؟ تو لیوان بریز مادر مینا شلنگ را رها کند تو باغچه و لیوان چای را از دست مادر میگیرد و میدهد به دستم گنجشکا تو شاخ و برگ انبوه درخت کنار درخت سدر که وسط حیاته سر و صدا راه انداختند عصر که می شود گنجشک ها دسته دسته هجوم می آورند به درخت کنار و غروب که می شود درخت کنار از گنجشک سیاهی می زند چای را مزه مزه می کنم حواسم به ماهی های قرمز حوز است که صدای صابر را می شنوم. امروز خیلی خوابیدی. چهار ساعت خوابیده بودم ساعت شش بعد از ظهر است مینا برگهای قرمز گل کاغذی را و برگهای سبز و زرد درخت کنار را جارو می کند و بعد دوباره شلنگ را بر می و کف حیات را می شوید شاخه های گسترده گل کاغذی سرتاسر سر دیوار شرقی خانه را پوشانده است گل های کاغذی لابلای برگهای های رنگ انگار که می درخشند. آفتاب از لب بام بالا می کشد شاهد از در خانه می آید تو روزنامه را تا کرده است و زده از بغلش. چه خبر؟ شاهد روزنامه را به طرفم دراز می‌کند و می‌گوید انگار که تو مرزی خبرایی هست. بیشتر بدانیم. صادق هدایت. صادق هدایت یکی از با نویسندگان ایران قرن بیستم است. هدایت چندین مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد ولی مهمترین اثر داستانی وی رمان بوفکور است. هدایت علاوه بر داستان نویسی علاقه عجیبی به فولکلور و فرهنگ آمیانه ایرانی داشت. وی اطلاعاتی در مورد اعتقادات سنتی، محلی و خرافی مردم جمعوری می کرد نمونه های زیر مربوط به تعبیر خواب و باورهای خرافی مردم نسبت به زمان است خواب هر که در خواب ببیند مرده است، عمرش زیاد می شود در خواب ببینند کسی قرآن هدیه به دیگری داده، کسی که گرفته صاحب اولاد پسر می شود زن آبستن شمشیر در خواب ببیند، پسر خواهد زایید زن آبستن مرواری در خواب ببیند بچهش دختر است در خواب اسب ببینند مرادشان داده می شود. در خواب حمام بروند زیارت خواهند رفت در خواب توی خلا بیفتند پول زیاد می آبند. گاو و گوساله در خواب دشمن هستند ساعت وقت روز صبح زود تابوت ببینند خوب است عروس را شب جمعه ببرند مادر شوهرش می میرد. در موقع دوختن لباس کسی راه برود اگر قدمش سبک باشد زود تمام می شود و اگر سنگین باشد دوختن آن لباس خیلی طول می کشد شب نباید اسم را آورد شب جمعه اگر مهمان بیاید خیر و برکت می آورد و اگر برود خیر و برکت را می برد. هرکس هر شب در گرمابه یا زیر درخت بخوابد خوابت بی وقتی می شود روز یک یکشنبه حمام رفتن بد است. شب عید نوروز رشته پلو بخورند رشته کار به دست می‌آید. شب یلدا بلندترین شب زمستان است. در آن شب باید هندوانه خورد. در ماه سفر سفر کردن خطر دارد. ایران را بهتر بشناسیم. برج کبوتر. نمای داخلی یک برج کبوتر. در دوره صفوی های کبوتر زیادی ساخته شد. مخصوصا اطراف اسفهان در سال 1598 میلادی شاهباس کبیر اصفهان را به عنوان پایتخت جدید ایران انتخاب کرد و در سالهای بعد ساختمانهای مجللی از جمله مساجد، مدارس علمیه، کاخا، پلها، خانها و بازارها در این شهر به وسیله این پادشاه بلند همت بنا شد همچنین در دوره صفوی بود که ایران روابط خود را با کشورهای اروپایی به خصوص پرتغال و انگلیس محکمتر ساخت. این بهبود روابط باعث گسترش تجارت بین ایران و اروپا شد و تعدادی تاجر اروپایی در اصفهان ساکن شدند.